سفه من که وجدان بیدار و آگاه نداشتم و واقعیت را درک نمی کردم اندرز درزیش را نشنیدم و با وجودی که چهل را از شطور او را با کلیه جواهرات بار شده روی آنها از او گرفته بودم باز تمع مرا به وسوسه انداخت و از او خواستم آن جبه ی را که درم روغن جامد داده بود به من بدهد زیرا فکر میکردم آن روغن دارای ارزشی باشد که حتی از ارزش همه این جواهرات هم بیشتر باشد. و جلو رفتم و درویش را در آغوش گرفتم و گفتم: "این جابه‌ی کوچکی بی اهمیت را هم به من بده که خیالم راحت باشد." درویش این بار با محبت و خوشویی بیشتر آن را به من تسلیم کرد و گفت: "اگر باز هم چیزی میخواهی به من بگو، خوشحال می‌شوم که تو را خوشحال کنم." وقتی من جعبه را از درویش گرفتم، ازو پرسیدم این روغن چه خاصیتی دارد؟ دازیش پاسخ داد اگر اندکی از این روغن را اطراف چشم چپ و روی چپ چپ مالی، کلی گنج‌هایی که در دل خاک نهفته است برای تو آشکار می‌شوند و اگر قطع از آن را به چشم راست بمالی، چشمانت فوراً بینایی خود را از دست خواهند داد. من که حرف او را باور نکرده بودم، با خودم فکر کردم اگر به چشم راست بمالم حتما همه آن گرنج را که با مالیدن روغن روی چشم برای من نمایان گردیده فران نزد من قرار خواهد گرفت و من مالک ثروت عالم خواهم شد از درزیش خواهش کردم قدی از آن را رو روی چشم راستم بمالد درویش خود داری کرد و من اصرار کردم تا آنجا که درزیش گفت چگونه از من میخواهی که سبب نابینایی تو گردم و یک اون خودت در پشیمانی به سر من که سخن او را باور نمیکردم، آنقدر اصرار کردم که او قدری از آن روغن در اطراف چشم راست من مالید. در همان لحظه احساس کردم دیگر چیزی نمی بینم. آن وقت فریاد برابردم. ای ایذیش آنچه به من گفته بودی عین واقعیت بود و من احوق باور نمیکردم. تو میکوشیدی مرا از این رفتار باز بازداری اما با دست خود این بدبختی بزرگ را به سر خود آوردم. از خواستم تا دوباره چشمانم بینایی خود را بیابند، ولی دردیش پاسخ داد این کار از عهده من خارج است و فقط پروردگار توانا قادر آن است به درگاه او دعا کن که این همه ثروت در اختیار تو قرار داد و تو ناسپاسی کردی و خداوند هم آن را از تو پس گرفت و اینک این ثروت را به من به کسی می دهد که شایستگی آن را دارد درویش این سخنان را گفت و شطورها را برداشت و ره سپار بسر گردید و من یکی و تنها در بیابان ماندم نیتوانم میزان تأثیر خود را بیان کنم در آنجا ماندم تا فردا که کاروانی به سوی بغداد از آنجا عبور می کرد فریاف کردم و مرا دیدند و با خود به بغداد آوردند به این ترتیب، آن همه سلوتی که خداوند به من عنایت کرده بود نتوانست مرا را بینیاز کند سروتی را که با ثروت بزرگترین شاهان جهان برابری میکرد از دست دادم و نابینایی خود را هم با دست خود فراهم ساختم از آن رسوله بعد راهی جز گدایی نداشتم برای مجازات خود سوگند یاد کردم در برابر هر نیکی که افراد به من میکنند از آنها بخواهم که با مشت ضربه سختی هم به من بزنند تا هرگز تمعکاری خود را از یاد نبرم سخن مرد نابینا که به اینجا رسید از خلیفه پوزش خواست که دیروز او را به جا یه ورده و درخواست کرد هر کیفه را شایسته او میدانند درباره او اجرا کنند خلیفه گفت با الله سرگذشت رو شنیدنی بود البته گناه بزرگی ملتکب شدی و به جای شکرانه پروردگار در برابر آن زد باز از تمام خود پیروی کردی و نعمت و خود را از کف دادی اما بر تو وجب است که این گامه نماز از خداوند بخواهی که گناه ناسپاسی تو را مورد بخشایش قرار دهد از این پس تا آخر عمرت روزانه چهار درهم نقره به تو داده خواهد شد تا به آسایش زندگی کنی و هم نخوص وزیر جعفر ترتیب کار تو را خواهد داد با عبدالله از خلیفه تشکر کرد و عمر دراز و با عزت برای خلیفه آرزو کرد خلیفه که از شنیدن سرگذاشت نابینا و درویش خوشنوب به نظر می رو به مرد جوانی کرد که مادیان خود را بیرحمانه مزروب میکرد و نام او را پرسید جوان پاسخ داد سید نعمان خلیفه خود سید نعمان من در عمر خود از سواری زیادی کرده و در مواردی هم عصبها را تنبیه کرده ام اما هرگز رفتاری مثل تو نشان نداده و نشدیده کسی با آن بیرحمی حیوان را آزار دهد ده دیروز من با چشمان خود در میدان شهر دیدم که تو چگونه مادیان خود را میتاختی و زیر ضربه های تازیانه مزرب میساختی برای من به چه دلیلی برای این رفتار غیر انسانی خود داری سید نعمان از سخنان خلیفه شرمنده شد و ناچار شد واقعیتی را بیان کند که مایل به افشای آن نبود خلیفه که خود پیش بنی می سید نعمان ممکن است احساس شرم ساری کند به او گفت ناراحت می ناراحت میشوی شوی که با شنیدن سخنان تو ممکن است من ناخوش شوم ولی نترس و حقیقت را بگو سید نقمان پاسخ داد فرمایشات خلیفه به من شهامت می‌دهد و آنچرا رخ داده به عرض می تا حتی خلیفه مطلحت می‌دانند مرا مراکه فردهند سرگذشت سید نقمان یا امیرالمؤمنین من در خانواده خوبی به دنیا آمدم و پدر و مادرم ثروت کافی برایم به ارث گذاشتند آسوده بودم و آرزوی برای انجام ای نداشتم و در انتظار بودم که همسد شایسته ای نصیبم گردد همانطور که خلیفه های دارند در میان مسلمانان خاص را دیگران انجام می دهند و دختر و پسر فقط در شب عروسی یکدیگر را می بینند در مورد من هم به همین ترتیب رفتار شد و من همسر خود را در شب عروسی دیدم و او را پسندیدم و با او شروع به زندگی کردم روز پس از عروسی هنگامی که سفره گسترده بود و می خواستیم شام بخوریم همسرم بر سر سفره حاضر نبود و من مدت درازی در انتظار او تا آنکه او حضور یافت. من خشم خود را از او پنهان داشتم و ناراحتی خود را ظاهر نکردم. وقتی همسرم بر سر سفره نشست، با چوبی بسیار نازک و لطیف مانند سوزن دانه های برنج را برمیداشت و بر دهان میگذاشت. بسیار تعجب کردم که این زن چرا اینگونه غذا می خورد. سرانجام به او که نامش امینه بود گفتم تو در خانواده خودت به این ترتیب قضا میخورده ای یا آنکه کم قضا هستی و یا آنکه میخواهی با این ترتیب دانه هایی برینجا شماره کنی و یا قصد داری سطح جویی نشاندهی اگر برای سطح است من دقیق کافی ثروت دارم و از این جهت نگران نباش اما امینه پاسخی نمیداد و به همان ترتیب ادامه میداد و گاهگاهی هم ریزنانی به اندازهی که گنجش با منوار خود برمیدارد به دهانش می‌گذاشت. این رویه همچنان ادامه داشت اما من به خاطر ادامه زندگی زناشوی ناراحتی خود را نمایان نمی ساختم و شبها نیز هنگام شب نه همان ترتیب رفتار می‌کرد. کرد در از شبها که امینه هم در کنار من خوابیده بود و من بیدار بودم متوجه شدم که امینه از بستر برخواست و لباس و صدا لباس پوشید و از خانه خارج شد. من هم بلافاصله برخواستم و لباس پوشیدم و دنبال او به راه افتادم. شب مهتابی بود و نور محتاب همه جا رو روشن کرده بود. امینه خود را به گورستانی رسان که در نزدیکی خانه ما بود. من خود را در پشت دیواری پنهان کردم و دیدم امینه با قูล ملاقات کرد. من از ملاقات امینه با قูล آن هم در گورستان غرق در حیرت شدم. و شگفتی من به اوج خود رسید وقت دیدم آن دو نفر شروع به کندن گوری کردند و جنازهای را که تازه دفت کرده بودند درآوردند و با این عمل غیر انسانی خود آن جنازه را به چندین قطعه تقسیم کردند و با آرامش آن را خوردند با یکدیگر گفتگو گفته همی که به علت فاصله من از آنها نتوانستم سخنان آنها را بفهمم برای من آن صحنه بسیار مشمع کننده بود هر وقت آن را به یاد میآورم بر خود نلنزم. همین که همسر من و وقول شكم خود را سیر كردند یه جنازه را در همان گود برگرداندند و روی آن را دوباره با خاک پوشاندند من با سرعت به خانه برگشتم و به بستر رفتم و قبل از رسیدن همسرم به خانه خود را به خواب زدم چند دقیقه بعد امینه وارد اتاق شد و بعد از لخت شدن به آرامی و بدون صدا وارد بستر شد و خوابید فکر من ناراحت بود و از عمل غیر انسانی آن دو نفر بسیار ناراحت بودم و نمی خود را همسر کسی بدانم که آدم است. ساعتها بیدار بودم و فکر می‌کردم تا خوابم ببرد. اما به زودی از خواب پریدم و از بستر بخواستم و به سوی مسجد را افتادم. بعد از نماز به بیرون شهر رفتم و در باخه اطراف به گردش کردن و تفکر پرداختم. میدونم نمیخواست رفتار خشونت به همسرم نشان دهم. ولی هزاران فکر از ذهنم گذشت سرانجام خود را راضی کردم با ملایمت و نرمی او را از ادامه این کار زشت باز دارم کاری که هیچ انسانی حاضر به انجام آن نیست به هر حال هنگام شام خوردن به خانه برگشتم همین که امینه از ورود من به خانه آگاه شد سفره دفت کرد و چند رقم خوردنی در سفره گذاشت و خودش از اتاق بیرون رفت او را صدا زدم به اتاق بازگشت و در نهایت ملایمت و مهربانی به او گفتم از بعد از زناشویی تو سر سفرها غذا نیامدی و هر هرکس دیگری به جای من بود تو تندی کرد و خشمگین میشد اما من انواع خوردنی را تهیه کردم تا بدانم خوردنی مورد پسند و صدقه تو کدام است نسبت به هیچ خودم از غذاهای مطبوع علاقه نشان ندادی و فقط چند دانه از دانه های برنج را مانند مرغ مک زدی من بهترین گوشت ها و خودنی را برایت تهیه کردم. اما می بینم هیچ خصی نشان نمی دهی. میخواهم آیا گوشت مرقوبی که در سر سفره من گذاشته می شود بهتر از گوشت پیکر بیجان آدمی نیست. هنوز این جمله من به پایان نرسیده بود که امیلی نگاه قضواود خود را به من انداخت و مانند بعد مادهی تیر ای قرشی کرد و نزدیک بود چشهایش از هدف بیرون آید و, و دهانش کفالود شده بود. من از تر چند قدمی به عقب برگشتم. چهره امینه از خشم سرخ و سپس قوانه شده بود. من دیگر قدرت حرکت نداشتم و مانند یک سنگ در محلی که بودم به حرکت ماندم. در حالی که هنوز کف از دهان امین بیرون میامد دست خود را در ظرف پر از آبی که در کنار عبود فرو بود و چند قطعه آن را به صورت خود پاشید و در حالی که سخنان را زیر لب زمزمه می‌کرد و من وقتم را نمیدانستم. های خود را از خشم به هم میفشرد و جمله آخر او را شنیدم که گفت بدبخت فلک زده سگ شو من آن لحظه نمیدانستم امینه زن دو است باز هم کلمات نامفهومی ادا کرد و من فورا به صورت سگ درآمدم من از شدت شگفتی و حیرت به قدری گید شده بودم فکر رهایی خود از خطر نبودم در همین لحظه امینه با چوب زرده های محکم و دردناکی بر بدن من وارد آورد که تمام بدنم کوفته شد. فرار کردم و به حیاط رفتم. امینه هم به دنبال من آمد و ضربه های پی, و پی بر بدن من وارد آورد. در این هنگام در کوچه را نیمه باز گذاشت. تا اگر بخواهم فرار کنم در من را ببندد و مرا لای در فشار دهد و حال کم سازد. اما من با سرعت از در حیاط بیرون رفتم و او در را بست. اما فقط انتهای دوام لایه در من که خیلی احساس درد کردم و زوزکشان توانستم وارد کوچه شوم. در داخل کوچه سکهی ویلگارد مرا دنبال کردند و مدتی دویدم تا به دکان پوست فروشی رسیدم و به او پناه بودم. اون مرا پناه داد و سگ‌ها را از آن نقطه دور کرد. این شخص که متقب بود به سگ‌بان ناپاکیس، همین که سگ‌ها دور شدن خواست مرا از دکان بیرون کند، اما من از ترس خود را در سراخی پنهان کردم و شب را در دکانش خوابیدم و فردا که دکان را باز کرد، من فرار کردم. و بعد از مدتی در در مقابل دکان نانوایی رسیدم و نانوا که مشغول صبحانه خوردم بود تکیه نان جلوی من انداخت و من برخلاف سایر سکها اول نانوار نگاه کردم و دست خود را به یه سپاسگزاری تکان دادم که این امر موجب شد نانوا خیلی شود و مرا به دکان خود برد و نوازش کند و من با او در همان دکان زندگی می کردم و نام مرا شانس گذار و به این نام صدایم میزد. وقتی مرا صدا میزن دور او میچخدم و به هوا می پریدم و جمع خود اتکان میدادم تا وقتی از دکان بیرون میرفت و غالبا یا دنبال او میرفتم یا جلوتر از او میدویدم. ببین تاثیر مدتی با این نانوا در دو خانش زندگی کردم تا اینکه یک روز زنی به آنجا آمد که من بخرد. بعد از خرید نان پول را به نانوا داد که اتفاقاً در بین پول خوددههایی که داده بود یکی از آنها تقلبی بود. نانوا آن پول را به آن زن پس داد زن از گرفتن آن خودداری کرد نانبا اصرار داشت که آن تغلبی است و بقیه درست است ولی زن زیر بار نمی رفت سرانجان نانبا فریاد کشید و گفت به قضی واضح این پول تغلبی است که حتی این سک هم می تشخیص دهد ده و در همین حال پول ها رو جلوی من روی زمین انداخت و گفت ببین و ببین کدامی که از این پول ها تغلبی است من پای خود را روی پول تقلبی گذاشتم و به چرح های نگاه کردم تا نشان دهم من چه کار کردم ننوان که حقیق تصور کرد من بتوانم پول تقلبی را تشخیص دهم بسیار از این موضوع خوشحال شده بود و منظورش از انداختن پول جلوی من فقط خجالت دادن مشتری بود سخت در حیرت شد و زن که دیگر چاروی نداشت پول تقلبی را برداشت و به جای آن پول سالم داد و رفت رفتن سفرکنندگان و مرا کرد و من است همسایه ها برد و درباره استعداد من نزد آنها شروع به تعریف و مبالغه کرد تمام همسایه ها میخواستند مرا آزمایش کنند پولهای تقلبی و سالم را قاطی می‌کردند و جلوی من میریختند من هم با پای خود تقلبی ها را نشان میدادم روزها مردم برای تماشای من به دکان می‌آمدند و نمی‌خریدند و شهرت من روز به شد از همه جای شهر مردم برای دیدن من به دکان نانوایی می‌آمدند و ما می‌خریدند و بدین ترتیب نانوا درآمد بسیاری پیدا کرد. همه فهمیده بودند که من سبب افزایش درآمد و ثروت کسی خواهم شد که مالی که من باشد به این جهت همه می‌خواستند مرا بدان می‌اندازند و من از تن آنها فرار می‌کردم. روز دانوی به دکان آمد و نان خرید و شش عدد پول خرد پرداخت. یک ها تقلبی بود. من پاییم را رو روی پول تقلبی گذاشتم و به چشمان آن بانو نگاه کردم. یعنی می گفتم این تقلبی نیست؟ بانو پاسخ داد چرا حق با تو است؟ وقتی از دوکان بیرون میرفت آندانلو مرا تصمیم کرد و اشاره به من کرد و از من میخواست که او را دنبال کنم. من همیشه در این فکر بودم که راهی پیدا کنم تا خود را از چش سگ بودم خارج و به صورت اول خودم برایم. روی این اصل وقتی بانوی یاد شده با دقت من نگاه میکرد، کرد به فکر رسید شاید او از بدغوانی من آگاهی دارد با وجودی که دو سه قدم دنبال او رفتم اما از دکان بیرون نرفتم بانوی خریدار نان دوباره به من اشاره کرد که دنبال او بروم ندونم که فکر کنم وقتی دیدم نانوا مشغول کار است و توجهی به من ندارد از روی پیشخانه نانوایی جست زدم و بیرون رفتم و دنبال بانو راه افتادم بانو از اینکه من او را دنبال میکردم خیلی خوشحال به نظر میرسید بعد از که به خانه رسیدیم که بانو در را گشود و به من گفت بیا تو پشیمان نخواهی شد من هم وارد خانه شدم و او در را بست در داخل خانه بانو یا جوان زیبایی مشغول گلاب‌توندوزی بود این بانوی و جوان دختر همان بانویی بود که مرا به دنبال خود به خانه آورد و بعدا معلوم شد جادوگر بسیار دستی است. ولویی که مادر بود صدا زد: دخترم سگی را که گفته بودم نانوایی است و پول تقلبی را از غیر تقلبی فرق می‌گذارد، با خود آوردم." همانطور که اول بهت گفتم، من فکر می‌کنم که این سگ آدمی بوده که او را با جارو به این صورت درآوردند. خودم در نانوایی آن را آزمایش کردم، دیدم پول تقلبی را شناخت و حال میخواستم بدانم که درست تشخیص دادم. آیا این سگ انسان است؟ مخلق و سخت شد بله مادر این حیوان در اصل انسان بوده است بعد جا برخواست و زفت آب را نزدیک آورد و در حالی که مقداری آب روی من میپاشید گفت اگر انسان دوده ای و بعد به صورت سگ در ای، پس به صورت اول خود در آیی. بله من هم به صورت اول خودم درآمدم. آمدم من بسیار خوشحال شدم که به آرزوی خود رسیدم و برای نشان دادن تشکر قلبی خودم دستهای دختر و مادر را بوسیدم و خود را به پای آنها انداختم و پایشان را بوسیدم و به آنها گفتم من چگونه باید مهربانی شما را جبران کنم شما بزرگترین خدمت را درباره من انجام دادید من سرگذشت خود را در چند کلمه به آگاهیتان میرسانم بعد از آنكه درباره ازدواج خود و رفتار ناخوشایند همسرم سخنانی گفتم و سرانجام شدن او را نسبت به خودم که منتهی به تغییر شکل من به صورت سگ بود بیان کردم دوباره از مادر این دختر که مرا از نانوایی به خانه آورده بود تشکر فراوان کردم بانوی جوان به من گفت من همسر تو امینه را میشناسم و میدانم که چگونه زنیست و اخلاقش را نمی اما تو باید به خانه خود برگردی و احترام و برتری خود را نسبت به همسارت به آوری تو و مادرم مشغول صحبت باش تا من که کتاب های جادوگری خود اطلاعاتی بیشتری به دست آورم. در این فاصله با به گفته پرداختم و او به من گفت که دخترش از دانش جادوگری آگاهی بسیاری دارد و از علم خود به سود مردم و در راه خدمت به سکندیزگان بهره‌گیری می کند. ولی این امینه هم تو استفاده غیر مردمی از علم خود می و به زیان اشخاص آن را به میبندد. وقتی دختر این بانو بعد از مطالعه کتابهای خود وارد اتاق شد، اطلاع داد که متوجه شده است امینه در حال حاضر خارج از خانه است، اما به‌زورین خانه میآید و به خدمتکاران خانه گفت که هنگام شام کردن با تو نگهان یادت آمد که باید کار خیلی مهمی را انجام میدادی و فراموش کرد بیف و برای این منظور شبانه دنبال انجام آن کار از خانه بیرون رفته ای ماشان در خانه را نبسته بودی، وقتی وارد خانه می‌شود که او آن ست را به توب زدن از خانه بیرون می کند و به خدمت گفته است که از تخیل تو در بازگشت به خانه ناراحت است سپس این خانم نیفوکات بچی پر از مایه را به من داد و گفت به خانه خود برگرد و در انتظار امینه بنشین وقتی او به خانه برگشت و تو را در آن خانه ببیند از تعجب میخواهد فرار کند همین که پشت خود را به تو کرد که فرار کند مایه این بچی را روی امینه بپ و گو این است سزای برخوهی تو آن وقت آن را میبینی همین مقدار توضیح خافی میباشد بعد از اون که بطری را از این بانیه مهربان گرفتم به او سجده کردم و پای او را بوسیدم و با خوشحالی گفتم تا زنده هستم خدمت بزرگ او را فراموش نخواهم کرد سپس به سوی خانه رحص شدم وقتی به خانه رسیدم امینه هنوز برنگشته بود بعد از چند لحظه به خانه آمد وقتی وارد اتاق شد و برخلاف انتظارش مرا در آنجا دید از شدت تعجب جیقی كشید و پشت خود را به من کرد تا فرا کند من هم طبق دستور جادوگر جوان تمام آبی را که در داخل بتشی بود روی او ریختم و به او گفتم این است سزای بدخواهی تو فورا امینه به صورت مادیانی درآمد که حضرت خلیفه دیروز در میدان شهر ملاحظه فرمودید بعد از آنکه امینه به صورت مادیان درآمد او را با زور به استعب بردم و در وجود مقاومت او افسار و دهانه و ركاب بر او بستم و هر روز او را با شلاق کتک میزنم و ناصزا به او میگویم بعد هم بر پاش او سوار میشم و در میدان شهر میتازم تا بتوانم به او شلاق بزنم عنج نمیدانم امیرالمؤمنین عمل مرا میپسندند و یا نظر دیگری نسبت به رفتار من دارند خلیفه پاسخ داد سید نعمر مجازاتی که درباره همسرت کردی بسیار درست بوده زیرا رفتار همسرت کاملا ظالمانه و غیر انسانی بوده است اما از تو میخواهم که با کمک جادوگر جوان دوباره امینه را به حالت اول برگردانی او به قدر کافی تنبیه شده است اما نمی‌دانم که در چنین صورتی باز هم میخواهد از تو انتقام بگیرد یا خیر در این موقع خلیفه با توجه و مدی شد که جفر او را به حضور آورده بود آن مرد همون مرد تنباف بود که خانه بسیار با بنا کرده و مورد توجه خلیفه قرار گرفته بود در این هنگام خلیفه رو به مرد تنباف کرد و گفت دیروز هنگام عبور از خیابان خانه زیبایی تو را دیدم و فهمیدم که تو مالک آن هستی و این بنای باشکوه را با پول تنبافی برپا کرده من با ثروت تو کاری ندارم ولی میخواستم از زبان خودت بشنوم، چگونه توانستی موفق شوی و از نظر مالی به این امکان فراوان دست یابی؟ حسن که همان مرد تنابف بود به بیان سرگذشت خود پرداخت؟ سرگذاشت حسن ریسمان باف آنگاه حسن تنابف گفت یا امیرالمؤمنین. برای اینکه آگاه شوید چگونه من صاحب این ثروت دارایی شدم؟ باید به عرضتان برسانم که بعد از خواست خداوند توانا دو انسان نک نهاد که رفیق صمیمی یکدیگرند سراب ترقی و ثروت من شدند. سعدی که مرد بسیار ثروتمندی است عقیده دارد که برای خوشبختی در زندگی انسان باید ثروت باشد تا نیازی به کمک هیچکس نداشته باشد. عقیده سعدی بنین است که خوشبختی آدمی بستگی به پریزگاری او در زندگی دارد و از دنیا هم باید به ای که به تواند نیاز خود را برطرف کند و به دیگران هم یادی نموید من گردد سعدی از جمله افرادی است که از وضع زندگی خود خشنود است و با, با وجودی ب... که سعدی سروت بسیار فراوانی دارد و سعد در مقابل او آدم بی چیزی به شما می آید با وجود این رشته محکمی از سمیمی آن دو را به یکدیگر دیگر پیوند می دهد و این تفاوت در ثروت خلالی در دوستی آنها وارد نساخته است و هیچ گونه اختلاف نظری با یکدیگر ندارند در یکی از روزها که با هم بحث میکردیم سعدی عقیده داشت که اشخاص توهید است کسانی هستند که یا از ابتدا نداشته اند و یا اینکه دارایی خود را در راه بیهوده و حوسرانی از دست داده و فقیر شدهاند در صورتی که اگر از روز نخواست، کسی حداقل سرمایه لازم را داشته باشد می با کوشش و بهره‌گیری از استعداد خود روز به روز سرمایه خود را عوضایش دهد و سرانجام خود را به شخص بسیار ثروتمندی تبدیل کند و به دیگران هم بحری رساند. سعد عقیدهش با سعدی متفاوت بود و می گفت را که سعدی پیشنهاد می کند یک راه حتمی و قطعی برای ثروتمند شدن نیست یعنی فقط از راه داشتن سرمایه اولیه انسان ثروتمند نمی‌شود. بلکه عوامل دیگری هم در زندگی آدمی پیش می آیند که سبب ثروتمند شدن می شوند مانند شانس و عوامل حساب نشده ی دیگر که شخص را به همان ثروتی می که دارنگان سرمایه و دارای استعداد خوب اقتصادی می توانند خود را به آن برسانند. سعدی پس از سخنان سعد گفت تصور نمی کنم بخت من و تو به جایی برسد و نسیجه از آن بگیریم به نظر من بهتران است که برای اثبات درست بودن نظریه من آزمایش عملی انجام دهیم بدین منی که پیشوری را پیدا کنیم که از لحاظ خانوادگی بدون سرمایه و لوازم مالی باشد و نقدر پول در اختیار آن پیشور بگذاریم و بعد از مدتی به او مراجعه کنیم و ببینیم چه تفاوتی از لحاظ مالی برای او پیش آمده او که پول لازم در اختیار داشته با استفاده صحیح از آن چه نق بر میزان آن افزوده است آن وقت اگر پیشور یاد شده بر میزان داراییش افزوده باشد معلوم می شود که نظریه من درست بوده است با این پیشنهاد سعد هم موافقت میکند پس از مدتی سعدی و سعد به دیگرکن بافی من آمدند پدر و اجداد من همشان در پیشه تنوف و ریسمان بافی بودند و این حرف از نیاخانم به من به ارث رسیده ولی مردمان سرمایه داری نبوده این سعد در حالی که مرا به سعدی نشان میداد گفت من سالهاست این مردم میشناسم که در این دکان مشغول است و سرمایه هم ندارد و برای آزمایش نظریه تو در اینکه سرمایه اولیه همراه با جدیت میتواند سبب ثروتمند شدن باشند این شخص بسیار مناسب است و تو میتوانی سرمایه رو در اختیار چنین آدمی بگذاری و نتیجه آن را بعد از مدتی بررسی کنی سعدی پاسخ داد من موافقم مدت هاست که این سرمایه را من با خود دارم و منتظر بودم تا فرصتی دست دهد و در حضور خودت آن را در اختیار شخص ای بگذارم آنگاه سعدی از من نامم را پرسید گفتم نامم حسن است اما مردم مرا حسن تنباف باف نامند لده هنگام سعدی به من گفت حسن حتما درآمدی تو از این تناف بافی به حدی است که چرخ زندگی روزانه را بگردانی و چیزی اضافه برای ذخیره کردن برای تو باقی نمیماند. و بعد از این همه مدت هنوز ذخیره‌ای هم نداشته ای تا بتوانی یک جا و به مقداری زیاد تنف برای بافتن تناب تهیه و انبار کنی من به سعدی پاسخ دادم من هر روز را رو تشن کار میکنم و پولی که به دست میآورم فقط منم و آب من و همسر و پنج فرزندم می شود ولی می توانیم بسیاری از نیازهای واجب زندگی را جوابگو باشیم با وجودی که قیمت کنف در بازار گران نیست با وجود این حد کولی به دست آورم، افراد با قسمتی از آن را برای خرید به کنف بکار گیرم در این صورت مبلغ باقی جوابگوی همه نیازهای زندگی هم نخواهد بود ولی همین قد که خداوند ما را نیازنم به کسی نمی کند و زندگی رومندی رو می گذارانیم. راضی هستیم. وقت ساعتی سخنان مرا شنید اظهار داشت اینک با پی بردن به فصل شما در زندگی متوجه شدم چرا شما از وضع ناچز مالی خود هموار خوشنود بوده ای. اما اگر من با این وضع شما مبلغ دیویسه که یه در اختیارت بگذارم که مالی شما قویتر شود آیا فکر نمی که بعد از مدتی فعالیت یکی از بازرگانن امدهی تناف در شهر پر جمعیت و بزرگ بقدر چوی سعدی بعد از این گفتار فورنکی سایی که دویست تکیه یه در آن جای داده بود از کمربند خود باز کرد و به من تسلیم نمود و گفت از خدا میخواهم که به تو برکت دهد و از این پر به توانی استفاده درست کنی و موجبات خوشحالی بیشتری برای خودت و خانواده از فراهم کنی من و سعد بسیار خوشنود خواهیم شد که به تفنی زنب به کس به کار خود بدهی. من از این سخوزنانی سعدی به قدری هیجان زده شدم که زبانم برای سپاسگزاری بند آمد و خوشیدم که لبه ی سعدی را ببوسم.